ایران رجل. بازنگری در تاریخ قلمرو میانی این قضیه کیومرز و شیر بابکان خیلی شبیه هم هست دو تا سردودمان یکی خیلی کون و یکی نزدیک هر دو دوچار یک داستان و تنجیز یکی هردشیر بابکان رو نجات داد نقشاش بود و نوشته هاش و اینه اونم رفته بود اما برای کسی دیاکو اومده حالا وضع کیومرز دیاکو خیلی بدتر ببینید راجب کیومرز ما دارم همین قضیه مشی و مشیانه هم حتی به صورت حقیقی و تاریخی هم داری تو متون که اینو حل کردن قضیه چی بوده و چرا اسطور برد شد میگه گزینش کیومه هست از سوی مردم به فرمان روایی آسر الباقی برو جزه هم در اسطورهای اجهی یک شخصیتی هست به اسم گایا یک دالی هست حالا بگذارید از دیده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 کی گفته فردوسی گفته که که از چل سال پیش بوده خیلی رک میگه میگه ندارد کسان روزگاران بیاد میگه ندارم سندش دستم نیست مثل همون کجا از جهان کوزخانی همی جزین نیز نامش ندانی همی هیچ اشاره نمی کنه فقط میگه اینقدر دوره که ما هیچی ازش نمیدونیم سندی به دستش رسیده بوده و اینها رو به از دارو برده به نام ایزد یکتا با عرض سلام و ادب خدمت هممیهنان گرامی به ویژه علاقمندان برنامه پژوهشی ایران ویج در خدمت شما همیهنان گرامی هستیم قسمت 39 رو میخوایم شروع بکنیم خیلی مشتاق هستم که در این قسمت خود بنده با توجه به دانش اندکی که دارم و همچنین مطالبی که از پژوهشگران این برنامه یاد گرفتم بر اساس یک منطق فلسفی تاریخی و جامعه شناسی تاریخی که قبلا مطالعه داشتم یه فرزیرم رو خودم اینجا مطرح بکنم. که اینو قول داده بودم اینو می‌خوام در حد عرض حدود 5 تا 6 دقیقه مطرح کنم بعد بحث رو مجددن در اختیار دو تا پژوهشگر برنامه قرار بدم که در مورد دوره کیومرث و آرام آرام پایان دوره کیرومس و آغاز دوره سیامک یا هوشنگ رو خدمت دوستان ادامه بدن. ببینید جناب آقای ایران فرماین که کیو یک نماد دور است و تو این بحث خودشون مسر هستند و بر اساس اون نشانه های تاریخی که توی اسناد ایران زمین، اسناد کهن ایران زمین هستش معتقدن که سرمایه که دوری سیامک هست متعلق به 32 هزار سال پیش سرمایه که جمشید اون رو خبر میده متعلق به 17 هزار سال پیش آخرین دوری یخبندان و سرمایه دوره ک خسرو متعلق به یازده هزار سال پیش که از لازمشون ناختی هم این مسئله کامل اثبات شده است به خاطر ثابت یک سیارکی به آمریکای مرکزی یک یخمندان کوچک هم اتفاق میفته و این از لاظاتاق کاملا اثبات شده است و هیچ تردیدی در آن نیست. جناب آقای فیروزی مطرح میکنند که بعد از انقلاب کشاورزی یعنی ایشون به هیچ وجه معتقد نیستند که کیوومرس به عنوان اولین شخصی که به عنوان پادشاه انتخاب شد در قلم روی میانی و مشخصا در فلات مرکزی بین بلخ و دماوند کیومرس هستش و این بعد از ده هزار سال پیش به این سمته و چون اساس پژوهش جناب آقای فیروزی پذیرش اون مسائل علمی، تحقیقات علمی که تو دنیا شناخته شده اینکه انقلاب کشاورزی نهایتا ده هزار تا یازده هزار سال پیشه اینکه که اسرفل ذات سال پیشه مسائلی که آقا ایران به تو برنامه های گذشته و این برنامه مطرح کردن و و حتی برنامه برابری هم مطرح کردن ساحن اونجوری که من فهمیدم این قالب ها رو قبول ندارن اگه واقعا اشتباه میکنم بفرمایید این نه, نه این اصر فلز از اینجا آغاز میشه نمیدونم. بله این, این قالب شون قبول ندارم. ولی خب آقای فیروزی به عنوان تحصیل کردی علم ژنتیک و تحصیل کرده باستان خب به هر دلیل قبول دارن اینو این اصره که انقلاب کشاوزی نهایت هم ده یازده هزار سال پیش بوده و قبل از اون خوش چینی و در واقع میوه چینی و این چیزا بوده. شکار بوده. یه مسئله رو من می‌خوام مطرح بکنم اتفاقا در کتاب دیرینگی جناب آقای فیروزی هم هست که عکس‌هایی هم در واقع گذاشتن به عنوان فرزی که برای دوره‌های مختلف مطرح می‌کنند دریاچه میانی بوده در فلات ایران دو تا دریاچه هم بوده دریاچه آب شیرین هم بوده و در ساحل این دریاچه‌ها یک سری شهر ها و حالا تا حدودی شهرهایی به وجود میان فرضیه‌ای که من می‌خوام مطرح بکنم اینه ببینید فرضیه اساس فازی بر اساس نظریه خب تو اندیشه سیاسی مطرح هستش تحت عنوان دولت شهر ما معمولا تو جاهایی که اساس این تمدن ها آب پایه هستش در جاهایی که معمولا فراوانی آب هستش حکومت ها و دولت شهرهای کوچیک به وجود میان ولی در جاهایی که معمولا خیلی فراوانی آب نمیبینیم حکومت های بزرگ به وجود میان دیوان سالاری بزرگ و حکومت های قدرتمند معمولا به وجود میام شکل می گیرن اما در جاهایی که آب زیاد داشت اش مثلا شما تا همین 150 سال پیش تو همین آلمان ما هم 300 تا شاهزاده نشیم بودن و این حتی کشور واحد هم نبود به اون شکل بعدا این کشورهای واحد به وجود اومدن اون فرضی که من میخوام مطرح بکنم اینه به احتمال زیاد خود این برخی از نشانه ها رو مثلا خود فردوزی هم میگه میگه که رستم یلی بود در سیستان منش کردم رستم داستان یعنی در واقع یه شخصیتی بوده یه شخصیت در واقع نظامی بوده پهلوان بوده شخص نظامی و فرهنگی تو این منطقه سیستان بود منطقه سیستان هم هم مثلا ما می دونیم که مثلا شهر سوخته زابل میگم تو منطقه زابل هستش از شهرهای ساحلی همون دریاچه مرکزی که این دریاچه کنونی همون که متوسطانه داره خشک هم میشه از بازمانده های همون دریاچه مرکزی که یکی از دریاچهای آبی کشور هستش فضیه بنده اینه که به احتمال زیاد این شخصیت هایی که در شاهنامه ازش صحبت شده کیومرس، سیامک، جمشید، کاوی آهنگر حتی فریدون این شخصیت ها شخصیت های سیاسی، به احتمال زیاد شخصیت های سیاسی، فرهنگی، نظامی و مذهبی این دولت شهرهایی بودن دولت‌شاهای نسبتاً کوچیکی بودن بودند که در سواحل این دریاچه مرکزی فلات ایران به وجود اومده بود اینها بودند و اینها مردم ایران از اینها خاطره ها داشتند و بعد از خشکی فلات ایران خشکی اون دریاچه مرکزی و به وجود اومدن دیگه امپراتوری ها و قدرت های بزرگ این اسناد منتقل شده و هم نویسندگان اون اسناد و هم خود فردوسی در واقع برداشته از اینها به عنوان یک نظام دانایی سیاسی از اونها ساخته و همچنین بر اساس دوره های تاریخی که اینها داشتن چون ببینید ما تا قبل از دوره که ما فلات ایران داشتیم تا قبل از خشکی حدوداً از حدود پنج هزار سال پیش به این سمت در واقع خشک شده حتی توی خاطره جمعی ایرانیان هم خیلی تاثیر گذاشته و ایرانی ها بعد از خشکی فلات ایران تبدیل به انسانهای نسبتاً مختصدی شدهاند. و بسیاری از اون عادت هایی که مثلا ما توی شاهنامه مثلا از ایرانیان گفته میشه ما الان مثلا نمیبینیم خیلی مثلا تو این هزار سال اخیر واقعا این چیزا رو از ایرانیان نمیبینیم یعنی این معتقدم یعنی که این تغییر اقلیمی که حدود شش هزار سال پیش توی ایران به وجود اومده نه تنها یک انقلاب فرهنگی و یک انقلاب سیاسی و فرهنگی و تاریخی تو ایران به وجود آورده و تغییر داده یه نقطه عطف بوده لذا ما میتونیم بپذیریم این خیلی نمیتونه بر هم شاهنامه و هم اسناد ایران کوهن خلالی وارد بکنه که مثلا این رستم مثلا در داخل زابل یک فرماندهی بوده یا مثلا جمشید یا مثلا کیومرس یا است در یک منطقه ای از ایران یه شخصیت سیاسی بودن یا فرهنگی بودن یا مذهبی بودن این خلالی وارد نمیکنه از یک طرف ما سند و اون کرونولوژی هایی که مثلا توی تمدن های مثلا بین النهرین داریم یا میان رودانی ما مثلا مورد پادشاهان آشور پادشاهان سومر و بابل دقیقاً گل‌نوشته ها و سنگ‌نگاره هاشون داریم و مشخص این فلان پادشاه از کجا کی پادشاه بوده اون از کی پادشاه ما چنین موارد تاریخی نداریم لذا با قطعیت نمیتونه میگه فعلا باید با این فرضیه ها پیش بریم تا اینکه بتونیم با تطبیق اونها و تحقیقات مختلف بالاخره مشخص کنیم که این شخصیت ها چه بودن چه شخصیت های تاریخی بودن یا شخصیت های که در واقع نمادی از یک دوره خاص بودند این فضیه رو فعلا من در همین حد بیان می کنم در برنامه های آینده اینو ادامه خواهم داد. فعلا به صورت خام اینو مطرح میکنم. امیدوارم که عمری باقی باشه و در قسمت های آینده فکر کنم در 10 یا 11 قسمت آینده تو همین حالت بشه تو همین 5-6 دقیقه اول برنامه این اینجوری بیان خواهم کرد تا اینکه به پختگی برسه فهم می کنم من وقت برنامه رو گرفتم از پجویش گرای محترم برنامه جناب آقا ایران مهر بحث کیومرث خودتون رو ادامه بدید و اگر پاسخی به بحث‌های جناب آقای فیروزی از برنامه گذشته دارید در خدمت شما هستیم درود به شنوندگان گرامی از های شما استفاده کردیم من در نشست پیش یک چند تا یادداشت کردم ببینید آقای فیروزی برای مثال از اسناد هندی حماسه ماهابهاراترو مثال زدن از این طرف از اژه اورفه رو مثال میزنن و از اسناد خودمون مسعودی رو میخونن. ما ده ها سند مختلفو می به شاهنامه مهوری محکوم میشیم آقای فیروزی تو چندین نشست چندین بار اورفه و مسعودی رو تکرار کردن و ظاهرا سند دیگه نمیدونم یا ندارن یا ارائه نمیدن در این باره و این اورفه خیلی خوب بارها مطلع شد همین گایا رو شما شخصیت زمینی بهش بدین برای اپام نپات ما بگردین شخصیت زمینی پیدا کنی برای آناهیت ما بگردین شخصیت زمینی پیدا کنی هر چیزی تو جای خودشه اونای که شخصیت زمینی دارن بله دارن ما داریم در مثلا به همایی که برسیم کاملا خود من هم از همه شما بیشتر تلاش میکنم شخصیت زمینیشو اثبات کنم اما هر چیزی جای خودشو داره ببینید یک جایی بود ما داشتیم بحث میکردیم مثلا ایران به جا ما میویم بندهش بخونیم میگفتن آقا اصلاً به درد نمیخوره میگفتیم چرا میگفتن وقتی وندیداد هست وقتی سند کهن هست ارجه دیگه اصلاً بعد اون دیگه سندهای بعد اون اصلاً معنی نداره خوندنش خب الان ما شاهنامه می بندهش میخونیم خونیم فروردین می خونیم بعد برای ردش دائم مواجه میشیم با اسناد دوره اسلامی یعنی دیگه او ارجه بودن اسناد کوهن، نیست که اینجا دیگه معنی نداره اونجا که اونجا بود سند کوهن معتبرتر بود اینجا ما هرچی میخونیم با سندای بعدترش ایراد میشه من به مسعودی حق میدم که خیلی اطلاعات نداشته باشه بعد اون کتابسوزی ها، بعد اون ویرانی ها یه حالا یک چیزایی به دستشون رسیده بوده خدا خیرشون بده همین قدم ثبت کردن بالاخره یه چیزی هست اما وقتی که به خدا اون سند کوهن تر دست ما هست انسان های نزدیکتر به اون واقعی دارن اون رو میدن آدمی که دورتره شمشیر کج عربی بالای سرشه حرف بزنه میگن خلاف قرآن گردن تو میزنن خب معلومه نمیتونه کنار آدم یک آدم دیگه درست کنه آدم ایرانی درست کنه. آدم و هوا تو قرآن آمده و سلام تو حق ندارید است کشورتو بگی بگی اول آدم بوده. میکشنت. حالا یه مقدار فضا باز شده از بازتر شده میدونن این یه گستور است خب که دین سرجاش این از این پس ما همون تناقضات رو پس باز دوباره دنبال نکنیم. بالاخره چی شد؟ من پیشنهاد میکنم تو دو نشست آینده حتما قبل از پرداختن به سیامک و هوشنگ و اینا حتماً دو نشست درباره فلسفه تاریخ که قبلا قولش رو دادیم بشینیم صحبت کنیم. بشینیم این روش شناسی ها رو بزنیم و طبق این چارچوبه عمل کنیم دیگه. من اگه بد میگم بگیم بد میگم یه موقعی وندیداد ارجح بود بر بوندهش چون کاهنطره. الان ما هر چی میخونیم از اوستا میگن نه مسعودی اینجوری گفته مسعودی درستتر میدونسته خب این که رد کرد اون حرفو که ما باید یک روشی بذاریم تو دونشاست آینده تکلیف رو روشن کنیم من معتقد نیستم چون وندی داد هست پس بنده رو به خیال من میگم هر گلیه بوی داره بعد از این استفاده کن درباره فرمای شما هم درباره اون نظری که دادین خب منم گوش کردم یک چیز این وسط میمونه آی بی تکلیف اسناد با درشمشه یعنی اگه جمشید یک شخصیت سیاسی بوده در کنار دریاچه من بحثی ندارم تکلیف فرگد دوم وندیدات رو برای ما مشخص کنیم شما نمیتونیم بگین فرگد دوم وندیدات بیخودیه واگرنه نظریه خودتون بیخودی میشه ببخشید شما نظریهتون باید در قالب این سند هم بگنجه خودتون فرمودین به صورت خام حتما بعدا بیشتر توضیح میدین خواستم بگم با دقت کنیم ما نظریاتمون رو باید با اسناد تطبیق بدیم نه اینکه اسناد خودشون رو با ما در مورد اون مسئله فرگرد هم اتفاقا صحبت احتمالاً بسیاره. بعد از آینده صحبت من. من یه عرضی من نمیدونم چقدر وقت دارم دو خوب من درباره این جایگاه چیز بحث شد جایگاه کیومرث بحث شد من یه نکته‌ای رو بگم درباره کیومرث تو اسناد ما چهار جا در شهر رو بنیانگذارش رو به کیومرس نسبت دادن خدمتون بگم که یکی به اسطلاح بابل یکی استخر، یکی دماونده و یکی بلخ بعد من توضیح میدم که همینطور که فرودین یشتو خوندم ببینین هر جای عوستا شما از هر شخصیتی صحبت میکنین از تحمورس هم که میگین دو خد از تحمورس میگه بعد سه صفحه درباره زرتشت میگه میگه از کیخست رو میگه دو خد از کیخست رو میگه چهار صفحه از زرتشت میگه فرقی نمیکنه شخصیت پیش یا پس از زرتوش باشه هر کدوم که میگه بعد کلی در... این گفتن درباره زرتوش و جاگای زرتوش در پسین زرتوش در برخ نباد این رو بر ما امر بر ما مشتبه کنه حالا که دو خد از تیمور گفت بعد از زرتوش گفت پس حدمز تیمور در برخ بوده ببینید اوستا در یک زمانی تدوین شده و دائم در حال ستایش زرتوشته و کارهایی که در پیرامون او شده نسبت دادن ساخت بلخ هم بدنخستین انسان یک امر حالت تقدس بهش میده یا دماون یه چیزیه که تو فرنگ ما یک نماده فریدون در دماونده همه چیز در دماونده از ها که تو دماوند چیز میکنن نام بردن از ساخت دماوند به دست کیومرس این یک نماده یعنی یک, یک چیز مقدس نسبتش میدن اینو میخوان این دو شهر مقدس باشه که همیشه هم تور روایت ما دماوند و برخ مقدسن. اما ببینید نباید استخرو بابل فراموش بشه. بنده ارس کردم اینا به زاگروس لسیدن. در زا... به دلایلی در زاگروس جنوبی مستقر بودن به همین دلیل که بعدا ما ببینیم ساخت بابل و شوش هم، یعنی بازسازی بابل و ساخت شوش هم باز به حوشنی نسبت داده میشه و بعد اون ما باز میبینیم بعد لحراسب که به دلایل بسیار خاصی ما و کلش رو در برخ میبینیم و برخ ازلت کده لحراسبه در اسناد ما، بعد از فترت دوران کیخسرو و انقطاعی که پیش میاد اونجا ماتم کده لوهراسه اما ما بعد دوباره سرکله همای و دارا و رو دورور دجله میبینیم یعنی دوباره برمیگردن سر جای اولشون حالا اینی که چرا اینطوریه شما ببینید تمام شاههای بعد کیخسرو هیچ کدوم فرزندان کیخسرو نیستن مستقیم یا غیر مستقیم همشون نوادگان فرهواکن این دلیل داره این بی خودی نیست مثلا کیخسرو فرزند کیکاوس اینا اون فرزند کیقوباد درسته این هم دور لوهراس به هیچ وجه و بعد یا هیچ کدوم ثوارشونه که نگم بکنه به کیخسرو نمیرسه همه دور میزنن نوادگان فروات میشن درباره ارزور هم توضیحات مفصلی از چندین سند از بتون پهلوی و آسانا از بندهش از خدمتتون بگم که های مختلف اوستا و جای دیگه هست که دیگه آدستان دینیگ همه اینا هست که در دوره سیامک بهش میپردازیم الان وقتش نیست من فقط خواهش میکنم دو نشست آینده درباره فلسفه تاریخ باشه تا بعد از اون نشست آیندهش بتونیم قاعده منتر بحث هیچ موردی نداره بس اگر آقای فیلوزی هم در واقع موافق باشن دو قسمت چهل و چهلیکم رو به فلسفه تاریخ میپردازیم هیچ ایراد خود بندم خیلی مشتاقم این مثلا. جناب آقای فیروزی شما حدودا هفت دقیقه فرصت دارید من فکر کنم شما چون که خیلی در واقع مشتاق هستید که از بحث کیومرس عبور کنید تقریبا تو این هفت دقیقه بحث های خودتون درموده کیومرس رو تقریبا تمام گفت کنید که... ارزام به خدمتتون که فکر نکنم بهش برسم ببینید این که میگن که آی ایران مرکی میگن این خدایان یونانی قابل زمینی شدن هستن بله اینا از اول خدایانه. این تبارشون مشخصه شجر نامه مشخصه به کدوم خدا میرسن به اون به کدوم خدا و خ... ایزدبانو میرسه تا برسن به مثلا آشفتهگی اولیه این تو هم هست ایزدان ما هم داشتن که در حالت پیش از زرتشیشون از دست دادیم حالت مانویشونده میدونید یعنی اینها ما عب... خدایانمون خیلی بیشتر از اینها بود نه. الان اصلا داستان ها گم شده حد یشتام مونده و یه مقدار دا... چیزای مانو داستانای مانوییه اینا جایگاهشون مشخصه یعنی ما مثلا آفرودیت رو نمیتونیم که ببینیم مثلا با هما مقایسه کنیم آفرودیت رو باید با, با اناهیتا مقایسه کنیم این قضیه یا مثلا با اشی بعد مقایسه کنیم این همتراز همن وقتی میان روجیو کیو مرس صحبت میکنیم کیو مرس نخسین گذاره رخصی دودمانی مملکت حالا با هر شاخ و برگی باید ببینیم با نخستین ها همتراز خودش مقایسه کنیم این قضیه است که یعنی قضیه رو زمینه کیو مرس فرزند زئوس یا نیست در حالت عوست داریش بله در حالت مالویش خیلی داستان دیگه داره ما هم ترازوی صحبت کنیم تو ببینیم به چی برمیخوریم ببینید بعد بحث برای میشه که ما سند متأخر رو به متقدم ارجح دادیم اصلا اینجور نیستش ببینیم ما دو تا مکتب داریم دو تا مسیر در یک مکتب میگه که کیو متن بشر در یک مکتب میگه نخستیم فرمان روان. قدیمی تا این سند یک مکتب در حال حاضر کهانتر از قدیم تا این سنده مکتب بعدیه این خیلی جاهای دیگه هست حتی تو فلاسفه روم و یونان بعد از قضیه افلاتون و نو افلاتونی یعنی هم این قضایی هست یکی میگن آقا هست. این قضیه مکتب فلان قدیم سندش اینجاست این رقباش یا هم چیزاش همآوراش اینجا هستن این طوری مقایسه میکنن در باره مثلا یک موضوع واحد قرار نه این مقدمه یا این قدیمی‌تر جدید‌تره جدید اینا میان که قدیمی‌تر این تیمو بحث میکنن اینقدر اختلافم هست ولی موضوع یکی است ما هم همین کارو دوم میکنیم فقط هم مسعودی و شاهنامه و اینا نیست ببین در خود همین هشت تا به اینا پدر پدر پسر یا فک فامیلن دیگه یعنی مثلا پیشدادیان کیورما سیامک کوشنگ تاهمورز جمشید اینا زهاک تا اینا به حال به هم نسبت دارن یا پدر پدر پسر یا نسبت مختلف اینها در یشتها یا در گات‌ها برای جمشید انسانی توصیف میکنن کاملا مک دومه کاملا مکتب است که می بین همه پاچه اصلا زمینی هست اینا و به تریب هم تا بکن تابلمون بلانوا کیومرس بشیم هوشنگ پیش پای کوه اللبس آرزوی بزرگترین شهریار شدن و برندازی دیو های مزند... مزندری و دوروندان و فلان جمشید خوبرممه در پای کوه هکر اگه درست میخوا می رو می خودش داره خ... اینا داره تحت عنوان کوی یک عنوان سیاسی زمینی به درگاه خدایان دارن نیایش میکنه قضیه خیلی ساده است و دوره جمشی آرزی بزرگترین این شهری ها رو پیروزی بر دیوان و دروندان و کویها و کرپ ها کاملا رو زمین عجیده ها شخصیتش اصطورهی شده این انوبانی نیست که نقش برازش هم داریم به دوران بعد خودش زمان کاسیایی ها شده یک هیولاست بچه ها رو باش میتر این قضیه انوربانی برای اجداگ اینقدر خاطری ای آدم منفی بود مثل انوربانی با کارهایی کرده برای مردم منطقش منفور شد برای متونه بدی منفور شد نماد اهریمن شد فریدون پسر آتبین از خاندان توانا این عنوانهای اوستاییش در اشتاس. در سرزمین چارگوش ورنه که قبلا هوشنگ قصد دیفای اونجا نبود کنه دروغویان اونجا نبود کرده در اون سرزمین حالا مردم میگن پیروز شده سرنگونی اجیدهاگ و آزاد سازی اون دو تا زن معروف که تو اسمشون خیلی در گرشاس به نریمان، پیروزی بر یک فردی، افراسیاب تورانی به تورانی تبهکار، دست به فرهی در دریای فارکه، کاووس توانا، آرزوی بزرگترین شهریار شدند، خسرو کیخسرو با کوی پهلوان سرزمینهای آریایی و استوار کننده کشور، آرزوی بزرگترین شهریار و پیروز به ها و, و کرپاه بر و به گردونه هم برش شده میشه توس پهلوان آور بر پشت اسب تندرستی خود اسبش پیروزی بر هماوردان هماوردانش با یک ضربه پیروزی بر پسران دلیل دودمان ویسه در گزرگاه فلان براندازی سرزمین های تورانی کاملا داستان زمینیه و میای تو گاتا زرطوش راجبه جمشید داره راجب گناه انسان زمینی پیش از خود صحبت میکنه قضیه کاملا قیاسی بین دو مکتبه اینا در یک ترازی است که ما بگیم شما مثلا قدیمی تر رو گذاشی کنار جایی تر رو آوری جلو. میگم آقای ایرامده دارن یک بودی به غازی نگاه. بل، من فکر کنم این دو قسمت آینده اگر در مورد همین فلسفه تاریخ بی تفاوت غبره میشه بهتر ادامه ده. بسیار آره. تا خواهد داشت. تردیدی در اون نیست. اینه که مثلا ما میایم دیگه توی برنامه دوری کیو مرس میبندیم. آقای ایرامده دوری کیو مرس مکان و زمان تو بگو. آقای بسیار آره. اولی شما مکان تو تمام. این تهشه این بدترین حالتشه ولی خب ما حالت خوشبیران هم داریم که دو قسمت اماد فلسفه تاریخ بحث میکنیم بعد اونجا به نتایجی میرسیم بعد دیگه هیچ کس نبنده بنده نه شما نه آقای میران دیگه حق نداره از اون چارچوب بیاد بیرون خیلی متشکرم جناب آقای فیروزی هم جناب آقای ایران مهره گرامی این قصوت هم روبه پایان هست شنوندگان گرامی البته من در مورد مسعودی میخواستم یک توضیحی بدم در قصد آینده تو اول قصت آینده یه دو دقیقه این توضیح رو میدم که تشییش صحبت میشه بعد تناقضاتی که خیلی هم از لحاظ تاریخی توی مروج و زبست هم از لحاظ مذهبی زیاد توی کتابش هست بسیار در این مورد کتاب ها نوشته شده و دو تا مقاله هم فکر کنم از آقای دکتر رسول جعفریان هست دوستان میتونن از سایت پورتال جان بولومنزانی اینو دانلود بکنن و اینکه نظرشون در مورد مروه جذهب مسعودی چی هستش channel گرامی شما رو تا آغاز قسمت 40 این برنامه به خدای متعال میسپارم خدای یار نگه نگهدار